که در اشریع صد صد صد صد صد صد صد صد لیکن بعضیها های روشن اوشندیستن اونایی که زیاد لذا قبول اونها محل اشکاله اما حدود هفتاش یا هشتاش چرا؟ نهتاش برکه حدود تان از ایک های ایناش سردهای معتبر داره اون بس همتونی که در روایات داره به اصطراح مسئلهی روایت روایت اون که <تصفيق> بعضی از کبائل اکبر هستن و بعضی همه ارسانم که این هم راجه به روایت اجماله چون من صابقاً عطر کردم و یک مسئله ماقیل از اینکه خود روایاتون باقر نگاه بکنیم اون لوازمش هم ببینیم از که یکی از این که لوازم این مطلب که کباره داشته باشیم یا یعنی نداشته داشته باشیم که در قبارات قرطوی خوندیم اون آیه مبارکه الله لا یقفه رو انیوش رکبه و یقفه رو مادون داره لمن یک شا. اگر یاد موالیتون باشه از کردیم ادهی از اهل سنت محتقیش شدن که این تشتن رو کبار ما هم و از علمای ما هم کبار نوکفر هنکم سیعات کن این تکثیر سیعات اینطور نیست که بر کبار باشه حتی توجیه کرده هم برای گفتن که یک قراره از انتشتن بود کبیر مانتون، کبیر شرک. و بعضی هم توجیه کردن کباره رو مانتون یعنی احسان کفر. مسیحی بودن، یهودی بودن، مانهد بودن، مانکه بودن،, بودن. اینجوری. و نتیجهش این گرفتن که نکفر هم کن، سیعات کن، سیعات یا سفائه نکفرات نیست نمیشه بگیم قطعه هم اینها مکتره اون چی که میتونیم قبول بکنیم سرائر رو داخل بکنیم فیقودی تعالی الله لا یفت رو ایو شکبه و یفت رو ما داره فیل مریشان یک از دار اینه عبارت کنیم که اونها میگفتن که سرائر دخل فی مشیه اینطور بود یعنی سرائر مکترات نیستن قطعه سبایر ممکولتون الالله انشاء کفرها به انشاء الامی کفر پس دقت بکنید یکی از چیزهایی که در بحث مصمر سمن میشه اینه که اون آیه مبارکه راجع به چیه اگر اون آیه مبارکه گفتیم راجع به سبایر این نقطه فنی نموده اگر گفتیم اون آیه مبارکه راجع به سبایر معنی که ما سهیره و کبیره نداریم این نکته فنی رو عرضم. البته این در خیلی از بحث‌ها هست اینکه اینجا باشه. که این نکته است که توجه بکنید. گاهی میشه یک مسئله در اختلاف هست، اون بعد در یک مسئله دیگه معنی بر این اختلاف میشه. مثلا ویا رو مادون لال کل من یشا اون نکته فنی روشن شد اونایی که منکر کبائر و صغائر بوده مثلا ما دون این صغائر. چرا؟ چون می گفتن کبائر کرد به مکفرات قطعی نیستن اگر مکفرات قطعی باشن من منیشا دیجوردن نمیاد داخل در منیشا هستن یعنی سقائر مربوط میشه به مشیت الهی اما اونایی که قاعده به کبائر و سقائر بودن اونایی که می گفتن فهم میکنن می گفتن سقائر افعال مکفراتن سقائر مکتفراتم دیگه نمیشه توی لبی داخل بشه تو مشیید داخل بود. خ نهچ شد. هستا آورین ما غیر از روایاتی که دیروز خوندیم امروز چند تا روات هم می خویم به تکیر در روایات اهلبه تا جای که من دیدم حالا ضعیف و صحی داره هر دور داره. در روایات بیت حتی یک روایت نداریم یخ رو ما دو نظر کللبنی تو سواره باشهه. بلکه یخف دارو مادون ازالف رو زدن به کبائه مثلا احلق مشیت رو زدن به کبائه نمیزم بحث روشن شد یعنی اولا خود تفسیر آیه مبارکه خودش یک مطلب دیگه که اصلا آیه روش تفسیر بکنیم این یک مطلب یه مطلب دیگه لازمه ای این تفسیره این آیه فرمودیم؟ اگر گفتیم این آیه مبارکه شامل سقائر میشه لازمش این بوده که ما کبیر و سقیره ند اگر میگفتیم این آیه شامل کبائر میشه لازمشت به لازم قول این بوده که ما کبائر و سبائر داریم. این آیه یخت رو مازونه داره که در مریشا این سال توجهاتون کنم. این مربوط به این میشه که آیا این شامل خاص به است. اگر این اهلسانه دیشون گفتن و ادهیم از معتظله معتقدم که این یخت رو مازونه داره که این سبائر این هم بحث کلامی این بحث توی کلام هم معتظل مفرک کردن و به اصلا در بحث سقیر و کبیر هم مفرک در بحث فقی و تفسیری همچنی که دیروز از کردن کبائر رو معتظل میگفتن که محفور نمیشه داخل نیست در لمایشا اون سقائره و رضا این حدیث باب 47 حالا باب 46 خوندیم اولا مال معتزله رو بگیم حدیث شماره دوازده باب 47 مرحوم شیخ صدوق ازبانو دارت در کتاب توحی هن الحسین بن احمد از آمن اینا محمد بن یحیی های یا که معروف از ماست هن عبی زکوان یا زخوان هن ابراهیم ابن عباس آل في مجلس رضا علیه السلام فتزكر تذاكر ما الكبائر و قول المعتزله في ها انها لا تغفر فقال الرضا عليه السلام فقال ابو عبد الله السلام قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزله قال الله تعالى عز وجل ان ربك لزم مغفره للناس على ظلمهم هم در این آیه موارد که در این استدلاع به این آیه علا ظلمه هم تمستا شد پس برامور این یک بحث رجالی هم بوده یعنی بحث هم بحث کلامی هم بود بحث کلامی هم بود در ببایات ما خوب دقیق به همه حدیث باب شبه هفت محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم حدیث اولش ان محمد ابن انسا ان يونس خیلی شهرت اونجوریه کاملا واضح شد کتاب یونس ان ابن بوکیان عبد ابن بوکیان و سلیمان ابن خالد اینشون از, از, از وجها هم بوده و از ثرا برهان خیلی شخصیت بزرگواری در کوفه بوده اصلا دیگر طبیعتاً آفرامش و جزو زیدیها هم بود بعد دیگه خارج شد یعنی جز اطرافیان زیده بود اصلا خارج شد خرج معزی و در جنگ هم بازر شرکت کرد, کرد دستش هم بریده شد. خود وادی کوفه به نفسه با هم چیز دراسشامش پمانن و خالد اقطر بیاد اخثر که یک دستش بریده شده. دستش هم بریده شد. جزء جز جزء اصلا شخصیت اجتماعی هم صا فقط کاشی علمی و ها بود و بسیار مرد بزرگبال است یقا <تصحیح> نگاه میکردم من برثدن رسن که. مثلا قرارت قرآن به اهل منتقی نیم شد تو باقید شاید احمد هم ادهی هستن که اینه دوست قرآن معروف پیش اهل سنت هم هستن مثل عبانه میترده اینه ام شایده امام صادر امام بابا شنه امام جلز نهب انعبی عبدالله علیه السلام قال انالله لا یقف رو انیو شکه به و یقف رو مادون دونه داله من لمن یشا الکبائر تماثواها هم این حدیث معتبر سناره هل کبائه فماسه باقا تو این تحجیب کرده سلیم. چون خودشم قاری قرآن فقیه هم از من ملای سلیمان نخاله جزوه شهرهای های سرشناس کوفه هست اون تو دخلت کبائه رو فل استثناء مراد از کلمه استثناء مراد الله هست این استثناء اینه این بعضا دیگه استثناء شده چون آیه وره کام از الا نه علمی قادر ان دشی انقد الا ان یشا الله این چون الا امر استثناء رو در از استثناء اللاز. چون داره الا لمن یشا گومه پسا جانی و بعد هم شاء الله گفت که ان شاء هم استثنا میگن از بحث ای این از الا ای پسا جانی که استثناء گو باید ان شاء الله اون تو دخل کبار و فل استثناء قال نه, نه. از کردن این اضافه در این که این آیه مبارکه البته مرهوم صاحب وسایل این رو به توبه زده لکن حالا دیگه بحثش طولانی میشه اشارتون ما از میکنیم از مجموعه اهم از مجموعه کلمات و آیات و روایات در این در میاد که توبه خودش راه افران زنوب هست لکن راه دیگری هم هست که این استثناء اونجا در حقیقت مال و اون شفاعته این همین اختلافی که هم الان وهابیا داره این و لزام از خدیم الان شد. معتقد بودن که این استثناء شامل کبائر نمیشه طوری یکی توبه است یکی هم استثناء یا شفاعت ایشون میگه تباهر هم میشه غیر توبه ها این ایشون مشکل با به باشه نه مراد این نیست مراد این است که حتی کوائر ممکن است بدون توبه هم لمن یشا اون بخشیده بشه این منیشا در حقیقت همون شفاعته که رضا پیغمبر اکرم حدیث معروفیه اینجا هم داره شماره چهار پیغمبر فرمود ان ما شفاعتی لاهل الکوائر من امتی این مال منیشا باشه باز اینجا معقوم شیخ صدوق نقل کرده مرسلن انا صادق علیه السلام الان نه ایراد نداره فعلا جویسندش رو قال از صادق علیه السلام و شفاعتونا اهل کبائر من شیعتنا فهمت تائبون فان الله عز وجل یقول ما على المحسنین مثوی کسی که به اصطلاح توبه میکنه این جزه مسادیق محسنه ما عدل محسنین من سبیر این که اگر توبه کرد جزء محسن بود که خداوند او را حضاب نخواهد کرد ولی زا ارز کردم توبه غیر از مشیهت ها اشتباه نشه اون توبه خودش از زایبا منزنبه من که من لازم بله که یوم ولدت و امو الاخرهی پس بنابراین دو تا مطلب هست یکی بحث قفران کبائر به توبه هست که اون مطلقه یکی قفران کبائر به غیر توبه هست اون داخل در مشیته و حدیث شماره دو باز به همون طریق مرموم کلینی از کتاب یونوس اصلا میروسه در درمون شخصه بسیار بزرگوه هایه و انصافا هم روایاتی که نهاره میکنه خیلی جمع رو رو قشنگ و لفظن مطنب این از تکام یونس ان اصحاق ابن اممار اصحاق ابن عمار از از بزرگان ما در کوفه بوده اصحاق ابن اممار سیرفی تقلیبی قال قلطل عبی الله الكباهروفی هست اصنا انتوب فره لمن یشا قال نعم قال اون حلی اول موسقه بود چون عبدالله نبوکت فتحی بود این حدیث دوم دو دیگه صحیحه این حدیث دوم دو کاملا صحیحه هست که کبائر این طوریه. باز حدیث شماره هفت این رو مرحوم صدوق گناه سوئل از ساله آورده اینجا به نقد سوئله آورده لیکن مشابه همین دو حدیث یونوسه فنقول الله بعد می فرماد دخلت کبائر و فی مشیت الله قال نعم. انشائه انزبه علیه ها و انشائه عفا الا آخر رواست سری حال من بله یه حالا اون رواست خوندم باز علیه ابن فی تفسیری حدیث 14 انعبیه ان نبی عمیر انعبی عبدالله صندت صحیحه اما مستر زریفه یعنی این کتاب تفسیر ما لعنی ابن الراهیم نیست. این عبی عبدالله علیه السلام فی قولی تعالی و یقف رو مادون دالکل منیشا دخلت کباهر و فل استثناء قاله این هم راجع به این قسمت که دیگه نموحب طولانی صحبت بکنیم. تا اینجا صحبت ای که شد اولا تقسیم بین کباهر و سباهر روشن شد. انصافت مجموعه روایات و شواهد خوغل عاده زیاده. و اما اینکه انتشتن این تشن و اما دو تا آیه از که نیز شده یکی آیه انتشتن تشن که این سهم دلایلش واضحه یکی هم آیه دیگه ال لی نشتن اسم الحبایش ال لمام این ال لمام گفته شده من از حقاره از که نیم ازدوا نسیم من دیروز یکشون دیم اشاره بود در روایات ما و در کتب احل سندت حتی از صحابه از زمان صحابه فما بند. نه در از صحابه هر زمان صحابه فما بند ادهشون قائل بودن لمن یعنی گناهی که برو کبیره باشه لکن گاهی از انسان صادر میشه از کم در موقع عرب علم به مکان ازانه زلده وقتی وارد این مکانی شد میگن علم نبیل بعد دیدم بندی از لغمی در این تفصیل برطبی نوشته که اضافه نزل به تو مرته لعن به نظرم خیلی دقیق نوشته, نوشته. خوب نوشته ظاهرا توی لمم این نکته هست کاری که پیش میاد و بعد میره دفر کردیم و لذا بریب نیست همینطور باشه و روشنش رو اضافه نیشتنه بونه کبار الاسم و فواهش یعنی حتی ممکن از گناه های کبیره انجام بده استادش رو به شربخن میکنه. لیکن این شربخنش یک بار انجام داده و توبه کرده تو خود مفهوم لمم ای رو گرفتن مبل بالمکان یعنی آمد و رفت دور میشم و رفتشم لحاظ شده از خیلن در کتاب تفسیر برطبی از یکی از اون زجاج بود که میداده نعم کرده خیلی حرف نتیفی انصافن منم دویم با ما هم میخونه صاحبه نصلا شواهد لغمیش نگاه میکنه و خود این قرآن خیلی تعبیر زیبایه مراد اینه که گناهی آمده و رفته گناهی یک شور بخند یک بار انجام بده توبه کرده رفته به این مراده از لممه نه مراد سقایر باشه رضایت همه از روایات ما زیاده چون بحث ما نمیخواستیم بشه در کتاب برهان در زید آیه سی در سوریه یا سی در سوریه نجد اونجا آمده و توضیحاتش داده شد اون آیات هم به ظاهرش به مکه میخوره با آیات مکی. بله در اون آیه بعضی از مفصلی نهر سنت در نوشته که کبائر یعنی کبیره و فواهش یعنی براشین کبائر گناهانی که اوعدالله علیه بنا فواهش گناهانی که درش حده هست تو روایت ما هم خوندیم که زنا و سرگه چون گفتن مثلا سرگت لازه کبائر نیست اما حد داره یا زنا لیکن توی بعد از روایت دیگه ما بود که زنا و سرگت لازه کبائر انصافا احتمال داره و یک احتمال دیگه داره که فواهش رو که ارز کردیم غیر از حالا این تفسیر که ما آگفته فواهش این گناهانه که خیلی عنانیز خیلی واضحه خیلی آشکاره بد بودنش و گناه بودنش امر واضحیه حالا وضوح است ما به ارتکازات و اغلایی میفهمیم داخل وضوح همش با مجموع روایات میفهمیم خوب درست رو مثلا بگیم هر گناهی که خیلی امرش واضحه خیلی امر علنیست یا حالا با ارتکازات و اغلایی ما میفهمیم این کار زشته یا اگر با ارتکازات و اغلایی نفهمیم لا لاعقل مثلا با مجموعه یه روایت و آیات این تاکید رو از توش در میاره این احتمال هست که مثلا ما یک فرق بین تواهش و بین کبائر بذاریم این احتمال شخص روایت هست اما خب اصفاتی این بردا مثلا جزمیه این مقدار خیلی کار واضحی نیست در قرآن هم داره براش تفاوض نم کرده که کان فاحشات و, و سایر حبیرا نظام تو روایت ما زنا به خصوص تو, تو فواحش آمده این احتمال احتمال بدی نیست چون ارث کلم تفاحشن دن وقتی که خوب زیاد باشه میگن تفاحشن مثلا کلمه فحش از این بود اون بدزبانی و اینها رو هم بیشتر در اون وقتی که خیلی منتشر میشه مثلا ادا کنند دهو متفاحشن یعنی خون خیلی زیاده خیلی کم باشه قليلا مثلا اما کلمه فحش در صراغ هم عبارت نهای ابن اصیل خوندی به یک مناسبتی که اصلا در کلمه تفاحش این هست اون فحش و صد را هم این جهت فحشش میگن چون اما امرو واضح و علنی بهانت علنیست بیه که شخصی تعرض علنی بیه شخصی ارز کنم به خدمت. این تا اینجا راجبی این مدرم اما به این که خدایی که خود ما معتقد میشیم که سغیر گناه هست لکن این اثر رو داره که این گناه موجب از شهادت نشه اون اشکالی که آمین که این معناشیه نه مشکل نداره موضافن به اینکه در اذه از روایات ما ترویج شده که انتشتر بود کبائر ما تن و من <تصفح> ما کفر در انکم سیئات بود لكن با ایمان شرط این تکفیر مطلق نیست ایمان خب اینم از موارد نیست که باید در تفسیرش به اهل بیت مراجعه کرد اگر روایتشون صدوق رحم الله مرسل بوده که امام فرمود نه ببون جرده به منجرده اجتناب کبائر تو کفایت ظاهرن صدق نظرش به نفی اون روایت بود همان روایت هم داریم که شرطیت ایمان اگر از اون اون روایت تمام بشه و جیدش تمام بشه برمان یک تفسیر خاص میشه قبول کنه. این راجب خود اون آیه مبارکی یه احتمال دیگری هم میشه داد در تفسیر اون آیه مبارکی راجب تکفیر سقائر که شاید مثلا بگیم این ارتکاز بوده خیلی بیان نشده این ارتکاز بوده توضیح اون تفسیر اینه که ما در بحث مفهوم شرط توضیحی راجع به مفهوم شرط دادیم از کرد خلاصه هم این اداد در لغت عربی و حتی لغتی که ما میشنسیم این عداد وضع شده برای تعلیق برای یک نوع ترکتب ما بین جزا و شرط بل ازا به طور طبیعی چون هدفش اینه مثلا میگه این مثلا یعنی اکرم چه فلانم مثلا اعطای چوب درهم چون هدفش بیان رابطه است بین اعطای درهم و اکرام بین اعطای درهم و حضور مثلا درس اگه درس آموزی پول میدی یا اگر مثلا خونه فلانی بشه قضا میدن چون ایجاد رابطه میخواد بکنه خواهی نخواهی زمان چه در شهر و چه در جزا از به اصابه چه در شهر چه در جزا از زمان منخلعه زمان نداره چون نظرش به تعلیمه اما این معناشی نیست که در بعضی از جاها با قرائم باز هم زمان موثر باشه خوب دقت رو خونه. این نکته فنی روی کمی ما سرکنیم تونتر بگیم بخواهیم که بخواهیم بخواهیم بخواهیم بخواهیم بعید نیست که ما ملتزم بشیم که گاه گاهی فعل که در به اصطلاح جمله شرطی هست چه به عنوان شرط چه به عنوان جزا اون متزمن معنای زمان هم باشه زمان توش هاست بشه شاید هم در ذهنیت این اینجور بوده این تشتنه بو کبایر ما تنهونه هن. این تشتنه بو ولو چون این آمده افتداعاً اینطور میشه که تکفیر و سقایر مترکت اجتناب الان اجتناب و کبایر این اینطور افتداعاً اینطور درم بگیم در اینجا به خصوص انصر زمان لحاظ شده خوب دقت بکنم یعنی اگر شما سهیره انجام دادید این سهیره گناهه این هنوز میمونه در حد اینکه که باید کفاره یعنی مکفر میخواد توبه میخواد بذارید شما اگر در طول تاریخ بگیم این زمان رو در اینجا لحاظ کرده امتشاری بود یه روز دو روز گذشته شما در خلال این ایام دقت بکنید در خلال این ایام کبائر رو انجام ندادیم در خلال این ایام اون سقیره یا کفر اینجوری براهو کنید پس اون نکته فنی رو دقت بکنید بگیم در اینجا فعل چه در جزاء چه در شرط چه در شرط چه در جزاء من به اصطلاح منخلع از زمان نیست، خالی از زمان نیست، مجرد از زمان نیست. در اینجا زمان توش لحاظ شده، تو این قضیه شرطیه لحاظ شده. و نظام تو بعضی از موارد عامه بود، کسی که نماز از خلصم و از صلوات و خنث و تکثرات ما بینهن نملن، سنن. این بود کبائر ما تنهن هستند، این لازمه به زمان باشه. یعنی اگر شما یک کویر انجام داد این گونه نه تنها توبه میخواد. اما اگه فقط 5 سال بعد از نماز دور کن نماز از خون، نمازاشو انجام داد، کبائر رو مرتکب نشود، نه سجوج شربخندی، زنای چیزی مون مرت... در طول زمانی که این کبائر رو مرتکب نشود و منها ادای واجبات و خرایز انجام داد، همراه اون زمان اون صغائر هم تو کرد. فرد. چون اگر ما اون مسئله زمان نگیریم معناش اینه یعنی اند ترکل کبائر تو کفر روی خطایی س... س... اند ترکل کبائر بگیم نه اند ترکل کبائر این همون اشکالی که اصولیین کرده ما معتذره کردیم، یعنی اصولیین به قرد برطبی کرده بودن بگیم در این آیه مبارکه و بگیم اصولا شده از مجموعه یه روایتی که از پیغمبر نقل در سالات و خمس کفاراتون ما بینه ها نمی نزدون و اینها از اینها اگر اینجوری فهمیدن حتی تو روایت اهدای هم در حقیقت معنا این بوده اینجا عنصر زمان در فل چه در شعر چه در جزاء لحاظ شده خوب دقت می‌کنه چه در شعر و چه در جزاء یعنی شما اگر این لحظه خیریه و انجام ندادید این توبه میخواد اما اگر انتشتن در مستقبل دقت چون خود فعل که اینجای که اینجا داره که فقط بحث ما این بود وقتی این میاد زمان درش منخله از زمان میشه خالی از زمان میشه بگیم در اینجا آی این ساعت رو بگرش این ساعت اینجا ایستاده ما رخت آین رو فراب نخونه بله آتر مونده بله بله رو یه رو بیشتر پس بنابراین راجب تفسیرهای مبارکه با مجموعه روایات و اینکه که واقعا سوائر هم مکفرات هست اینجوری معنابا کنید مکفر بودنش یعنی همراه با اتیان واجبات چون ترک واجبات موجب کبائره هم در مستقبل اگر شما الان این لحظه سغیره را انجام دادید چون در این لحظه کبیره انجام اجتماع کردید این در این لحظه مکفر نیست این در طول زمان پنج ساعت ده ساعت یک روز گذشت دو روز گذشت شما کبائر رو انجام ندادید اون صغائر خود به خود از بین میرن دقت بکنید نه اینکه به مجرد ترک کبائر صغائر هم نه عنصر زمان رو لحاظ بکنید این با مجموعه روایات و با مجموعه شواهدی که در آوردیم انصافا بهتر میخوره پس تناوبرید مرتضب میشین که سهیره هم گناه هست البته در این آیا تأثیر بکن در رد شهادت با مجموعه شهادت نه در رد شهادت تأثیر نمی کن شهادت بلا یعنی بکنیم با مجموعه روایات میشین اراده کرد مشکل نداره اراده زمان مشکل نداره عادتا این توش اراده زمان نمیاد چون این نازره به تعلیقه بگیم این تعلیقم هم برای همین یعنی در طول این زمانی که شما اشتنابه کباید میکنید در این طول تکفیر فماید میشه. در طول همون زمانی که شما همراه با زمانی که شما اشتنابه کباید میکنید در طول زمان در همون وقت هم اشتنابه سباید علایه حاله انصافا مجموعه روایات و آیات مبانه که خیلی واضحه نمیشه در این مطلب با خیلی شک و شبه بکنید و اما سغرام آیا غیبت جز کبائر هست یا نه؟ ارز کردیم انصافاً اگر میار ما او اده علیه نار در آیات مبارکه ما به عنوان نار نداریم بله یک روایت بود که سندش معتبر بود اون روایت در کافی بود من قال فی مؤمن مارعت و اینا و سمعت و اوزنا فا هم من من قال الله تعالی اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ انْتَشِي الْفَاهَشِ فِى الَّذِينَ آمَنُو فبشرهم یوسف اشرو این رو ما داریم در باب غیبت اینو داریم یکی این یکی این که در خود باب غیبت تأکیدی شده یا یا الذین آمنو چون تاکید قرآنی است من ارکادم اصولاً در جاهایی که قرآن تاکید میکنه بگیم خود این علامت این است که این مطلب جزء گناهان بزرگه یا الذین آمنو اجتن و کثیرا بنظر افتضانه آمده در فرونده ابن بهواز و ابن اسما اضافه بر اینکه تنکیف ورده به وجوب اشتناب وصف علم بش داده پس هر شاید بعید نباشه که علم در لغت معناش بیش از یک گناه عادی باشه و اگر امام نگاه نگاهش در ذیل لایه اسم و ما اکثر منته ما حتی مفصلی شواهدی آوردن که در زبان عربی به اصطلاح به این صورت بوده که مسئله به اصطلاح شراب رو اصلا اسم میگفتن خود شراب رو شراب طور اصم حتی وله حقید. خود این رو گناه میگفتن این هم یه اصطلاح است. بدیم این که آیه مبارکه داره اشتنه بود بعد میگه و ان نبرر و نعفمون و بعد میگه برا تجسس و علایق بعضی خون بعضا چون بعضی هم این به سریح خدایی مبارکه تاکید شده روی اجتناب از او اولا اجتناب و بلع از ولای خطر بگیم خود این نشون میده که این یکی از گناهان بزرگ این راجع به راه دوم راه سوم مجموعه روایاتی که وارد شده که از منزله اون رو بدل کردن در این قصیده و خیلی تحکیب شده تحکیدات شدید یا آده بگیم لاعقل اگر ثابت نشد اون روایت به لحاظ سندی و به لحاظ تاریخی لاعقل این احتمال قویه که جز به گناهان و کبیره باشه در معامل اسلام. و یکی از روایات رو که در روایات ما هم بود و در روایات عامه که اکثر از که به استطلاع استطالت تو فی ارض المؤمن مثلا دست درازی بکنه، پا درازی بکنه به آبروی مسلمان. اگر این رو هم معیار بگیریم، انصافاً قیدت اونها هست و یکی از بهسا محورهایی را که ما سابقا عرض کردیم و اون اینکه مثلا محور باشه در باب خودش، انصافاً انتشار ریبا در جامعه یکی از عوامل اساسی ترویج نفاقه. یعنی روبروی هم یک روز زندگی میکنم پشت هم روز دیگه زندگی میکنم یکی از مهور ها سنین انصاف در جامعه‌ای که غیبت باشه این مطلب که اون اساس جامعه و هم ریخته میشه و اصولا اون حالت اجتماعی را هم از دست میده چون حالت اجتماعی قبامش بینه که انسان یک ظاهر و باطن داره حیوان ها ظاهر باطن نداره اجتماع هم نداره حالت مللی نداره انسان ها چون ظاهر و باطن داره ممکنه باطن را شدی بد باشه ما خب در ظاهر با هم زندگی و اگر بنابوش با غیبت اون جهاز رو کشف بکنه و اون جهاز رو بیان بکنه جامعه انسانی اون علفتش رو از دست میده اون پوچیدیه ها و اون چیزهایی که انسان دوست نداره گفته بشه اونها رو از دست میده چون ما پخش میکنی همه یکی پخش میشه. این حالت اجتماعی رو هم ایجاد میکنه البته راجع به اینکه غیبت چه عواملی داره و چه اسبابی داره در این کتاب‌هایی که متعارفه، کتاب غزالی، کتاب به اصطلاح احیاء العلوم، تا یا 10 از اسباب قیبت نوشته که در کتاب‌های ما مثل ساده و جامع ساده آمده من هم در کشف ریبه مرحوم شیخ از ایشان گرفته، آخریم سه تاشه دارن، شیخ هم نداره، مرحوم آکوییث سه موردش نوشتن. حالا اگر توفیقی بود، حالا یک توضیح دادیم، یک توضیح هم بیشتر علایه حاله انصافاً با مجموعه شواهد اون وقت اگر قبول بکنید که باز سواهش غیر از کواهد این که قیبت جزب سواهش باشه خیلی واضحه دیگید مجموعه شواهد رو که به هم بریزیم انصافاً این که قیبت جزو کواهد باشه تا حد زیادی واضحه در تا قطعی قطعی نیستی که ایشون به بعض مناقشه کردن مناغشه جای خودش هست اما اجمالاً بد نیست. این راجعه بیگیم بحث تا اینجا. بحث بدنی که مرمون شیل مطرح کردن و استاد هم خیلی در اینجا میدان آمدن قیمت اهل سنته. یا به تعبیر آن مخالفین. که آیا اهل سنت رو میشه؟ چون اشکال اولیش هم همونه میگوز ذکر که اخاک به ما یک رو یعنی ها اهل سنت برادران ما نیستن. مشروط و البته در این که کتاب مکاسب چاپ عراق رو داره خدا رحمت به مرحوم چون بودیم با ایشان با برنامه کاری این جز که می‌خواد چاپ بکنه به خاطر تشکیلات و حکومت و سننی ها چاپ نکرد این قسمت رو یه قسمتی از این کتاب مکاسب چاپ افتاده این چاپ نظر مکاسب برنامه کاری هست ایشون این قسمت به قیبت مخالفین و سنت رو نگورد کلاً حذف شده به خاطر مشکلات چاپ در ارام. در ارام. مرحوم آقای خودی نه رو از مرحوم مقدس اردویلی که قیبت به سنی جایز نیست اما ایشون میفرمان چرا جایزه مرحوم استاد میفرمان جایزه به بحث رو ما صفهه ایشون سیستد و واضح همازه ایش اساسه ایشون واضح به بحثشون هم مرحوم استاد سه وجه در ایشون در باب این که قیبت احل سنن جایزه چار وجه الوجه حال اول قد سبته به روایات ولی و زیارات مثل هم نسمون روزشون زیاده جواز و لعن المخالفین و وجوب و البراعت من ها و اکثار و سبب علیه این خیلی عجیب این اکثار و سببب شد مقرر نوشته و اتحام ها و, و الوقیعت و فیه و در اونها مثل متعرض اونها شده ای خیبت ها بله بله قیمت اینا جاهزه در هم من اهل بدع و رید یه هاشیه ایشون در اینجا داره در شماره دو مقرره ایشان نمی فهم مراد ایشان رو نفهمیم چیزی در واسه اشکال بکنه, واسه بکنه. مراد ایشان چی بوده بلا شب حتی فی کفره این عبارت منوستم لعنه این کار الولای از علای معلی مستلام حتی الواحد من هم ولی اعتقاد به خلافی به خلافت غیره هم. و بلعقاید خرافیه کلجرب و نهویی یوجب کفره و زندگی از زندگی که احتمالا زندین بوده یعنی همون دینی که در فارس قدیم ایران قدیم بوده این زندگی حباره از این بوده نه کفر بوده احتمالا گروهی بودن که چون کوفه معظمش ایرانی بودن دیگه در فتح ایران که شد خب کوفه ایرانی ها زیاد کوفه بودن و به اصطلاح خودشون رو به یکی از اشائر به ولا ارتباط میدادن این زندقه در کوفه از کردیم از حدود سال سد و بیستاری زمان امام صادر ظروفه که اینا زندقه میگفتن احتمالا زندین بوده زندیق, زندیق. احتمالا ادهی مجوسی بودن آره ایشون... زندقه رو فعلا معنی کفر بیان گرسن مطلقه معلوم نیست اصل کلامش این بوده و تدلو علیه الاخبار المتواتره از ظاهره فی کفر منکر الولایه و کفر المعتقبه بالعوارد المذکوره و ما یشبه ها هم از زلال ها من توضیح هسته من میگه اینجا دیو خواهیم والی میشه مثل این بحث کردوره میشه خیلی داری میشه مرحوم صاحب وسائل در ابواب قضا در کتاب و حدود در آخر ابواب حدود بابی داره به با عنوان باب جملت مایست جملت ممیست تو به کفر و ال ارتداد از اعواب مرتد نمیذارم 25 تا 30 تا حدیث اونجا بوده 35 تا حالا عرض شده بود خود من متعهد شده مفصل تو بحث وسایل همشه بررسی کردم الان بختی این کار نیست در اونجا سایر وسایل رو اگه اون بخوام وسایل رواتش اونجاست کی ایشون اثبات کرده که روایات رو آورده که مخالفی اهل سنت کفرن ایشون حکمه به کفر کردن در از و وسائل این اخبار متواتر کامل مثلا ترجمه کتاب الخوی فرمودن نه نظرشون به همون کتاب وسائل باب مرتد خیلی هم با مفصلیه تو اون ابواب بابش عباق. مثلا همش تا 5 تا حدیث یا تا 35 تا حدیث داره اگر خواستین که اونجا نگاه کن روایتش اونجاست که ایشون اشاره کردن و اما به این صورت تفصیلی بحث داریشون اشاره کردن در میان معاصلین ما البته تو قبل از معاصلین هستن. هستم این بحث در بحث به مناسبتی در بحث کتاب تهارت آمده من جمله، اگر آن خواستن برای کسایی که خیلی متشددن برای این قسمت مرمون بهرانی در حدائه ایشون هم در اونجا روایت و ادهشون هم حکم به که بکرده شون قطعا اهل سنت کافر هست فقط بعد در احکام ظاهری مثل طهاره تو بار میشه به اینا کافر حقیقی هم اگر آون خواستم و من این ها جواهر و من ها آیان علمای ما در اروه و شرح اروه اگر خواستم این یک کتابی از همه هم مای خوب این در طهاره جلد سه طهاره ایشون هم اونجا داریشون هم خیلی دفاع میکنه و سعی میکنه جواب صاحب هده در از آون اگر خواستم این هم در بحث روایش اونی که من الان میدونم که جمع کرده اینها رو به این عنوان مرموم تا وسائل و از هدائه و برد خود جواهر جواهرم داره ایشون هم جوز کسانیست که حتی دای ادعای اجماع میکنه که این اهل سنت کفار و در شبه نیست و اتفاق نیست و بعض از احکام و بعد ایشون فهم و یدوند و علیه هیزن قول رو جامعه و من جهد کن کافر این دیگه لازم هموند که یک رواید در بیارن. هر از کردن سی چهل تا رواید صاحب وسائل آورده و قولی علیه السلام فی های زن زد و من رحدهو قبل انکم و خیشون فهمونده فی اینهو یمتجو به عکس نقیز انما من لم به ازطلاح قبل لم یقبل انکم لم یو اخیدهو و, و ها بله هموش کن بله از این اطفال این مسئله شمیست و ازی بعضی احادیث الوادیتی عدم وجود بر ازای صلاات علی المصابین، این حالی که کنت علیها، آزم منتر که ما ترکت من از صلاه، یعنی اون ازای که کردیم. و بعد و ازی جمله‌تنین روايات، همکارم روايات زیادی شد، نمی‌خواد که دو سو شو بخونم. آن ناسی و لا نا اهل البيت شرمندال یهود و نصراء. البته باتر یهود و نصراء دراو، وارد زنا یه اون روایت از امام داوود ایشون و اعمن من الکلب و ان الله تعالی لم يخرخن ان من الکلب و ان ناصر لنا اهل البيت لانجس و من البین البته این در اون روایت عنوان ناصبه یک یه سغرا میخوام اون سغراش اینه که هر چیزی سنی باشه ناصبیه چه یه روایتی باشه که سرقول در یم کافی است در این که ناسبی بودن اینکه که رو به تقدیم همان تقدم اولی دومی از در سنون بله پس این روایت توش عنوان ناسبه یک زمیمه هم باید بشه که هر کسی که سنی باشه مطلقا احرسولت ناسبی هست هم. همین که بگن اول وقت اومد خلیفه اینا میشن ناسبی البته این روایات زیاده نمیدونم رو اشاره اجماله میکنیم اما این روایتی که ان الناس و اهل بیت الانجسون ذکر کردن خیلی مشهور و از همان شهرت داره. داره برای که شهرت جادره برنیزه اما تمام اسانیدش ضعیفه سند روشنی نداره متاسفانه دقت کافی نداره البته چرا در کتاب کافی آمده تعزیه و ما تو مصادر اصلی ما نرف شده شهرت داره تو الفسون خیلی مشوره ان الله لم يخلد خر عنجسون ذکر کرد و ان الناس و اهل بیت الانجسون کرد حالا با قطع نظر از اون نقطه‌ای که آیه کل اهل سنت ناسبیه یا نه، لكن تمام اسانید این روایت ضعیفه و این اشتباه شده خیال کَرن مثلا سند معتبریه. سند معتبر نداره نمیدونم این روایت یه چند تاشو بخونیم برای ت벌ث مثلا تردا علایم روایاتی که داره اند الناس بذنا اهل البیت لا عند کرد الکرد وسایل در اختیار هست؟ این در دو باب در وسایل آورده هر دوشن در جلد اول چاپ مرموهای ربانی چاپ مرموهای ربانی هست جلد اول یکی تو ابواب مائل مضاق عورده یکی تو ابواب آداب الهمام آداب الهمام آخر جلد اوله چاپ مرموهای ربانی. یکی تو ابواب به استطلال آداب الهمام نقل کرده مرمون ساع و ساعه البته توی ابواب آداب الهمام کامل نی peski یتیکش رو آداب خیلی کوچیک. مرحوم آی ربانی تو هاشیش کامل آورده با هاشی ربانی نگاه بکنه رو دواز مفصلیه در ادار شرایط مفصل آورده مرحوم کلی یک مقدارش آورده اما مرحوم صدو همون متن مفصل رو آورده که اگر خواستن آیون خدای ربانی هم نوشته نشد چون این صورت در کتاب نمیده من کاملش میارم در آداب الحمام به طور کامل در کلمات مرحوم آی ربانی هم. به ن بنا اهل بجل ان من کل از کردم این رو باید با اشتاری فداره صنددن ضریعف بگه جبران مثلا که کتاب های محلوی نوشتن از اونجا و منبلدیری اند جواز بهبتته هم و من امور مسکوه بل رفت جواز ازقیه عاطفی اهل بدهه و زلا زلا این که حالا همهشون اهلدهده و زلا باشن اه زلال چرا بده معمنون نیست و بقیه تو ریال نه اما قد حکم الاسلام علا بعضه قطعا اون بعضه اونوی که خیلی اصلا اون نیستن مثلا فی بعض الاحکام فقط تسهیلا للعم یا اونایی که مثلا حب به اهلویت هم دارن اما این بعضه اینوی که کنم اما مرحوم جواهر ظاهر عبارت جواهر بعد داره ظاهر عبارت این دو بزرگوار که اینا واقعا کافرن نه اینکه ظاهر واقعا و جمیه آثار کفرموار میشه، اقلات دو سه تا اثر به خاطر مراعات حال ظاهره. ولی واقعا کافیه. در سبط احکام اسلام الا بعضی فی نزد حضرت ائمه در زمین که خود نفر نمیبینن. شاید غلط لفظی باشه. فی بعض الاحکام فقری به علاوه بعضی زیادیه. تسهیلن لد امر و حقن لد دما، و صلی الله علی محمد، وقتی متعرض روات بشیم به هر حال فردا یک جوابه اجمالی از می خود طولانی می شود نفت نشده بخی نیست <تصفيق>